آئیز. تکی اول شیشه پاکن را می پاشم روی لکه زرد خشک شده ی ماست. روی میز شیشه ای. کمرم را راست می کنم و صبر می کنم تا قطره آبی شیشه پاک کن خورده های زرد ماست را حل کنند و لابد از آن برگ و سبزه بروید و خانه را گلستان کند. گوشی را به آن گوشم میچ و میگویم می گویم. حالا منتظرم اثر کنه. کمرم درد گرفتن قد میزو سابیدم هر کاری میکنم پاک نمیشه. چرا اسکاش نکشیدی؟ می ترسم شیشه ای میز و گوشی را با شانه نگه می دارم و خم می دستمال را می کشم روی لکه. تکه های زرد به جای سبز شدن مثل یک جنگل پردرخت مثل خاک خشک شده کویر جدا می و به دستمال می چسبند. دو سه تکه سمش باقی ماندند که پاک نمی شوند. رسیدم به سنگ. می نشینم کنار میز و با نخون شروع می کنم به خراشیدن سنگ ها. مامان می گوید خوش گذشت؟ آره خوب بود. خیلی وقت بود دلم میخواست بگم بچه ها بیان اینجا. گفتم مالک سمیرا تهران و روجا هنوز نرفته وقت خوبیه که دور هم جمع شیم. سمیرا کجاست؟ دیشب پروازشون خیلی تأخیر داشت. ساعت سه بود که رسیدن. حالا مرفته رفت و به خوابونه که بهانه نگیره. یک بار دیگر روی میز را دستمال میکشم. نه جنگل است، نه کویر. پاک پاک شده و مثل دریای آرام زیر نور خورشید برق میزند. عروسک بدمن آریان کنار پایهٔ میز افتاده انگار همه آدم بدها را شکست داده و حالا خسته از پیروزی خوابش برده میگویم آریان خیلی شیطون شده دیشب یه یجا بند نمیشد همه چیز رو به هم ریخت عروسکشم ینجا جا گذاشته از کشوی کیسه ها یک کیسه زباله سبز بزرگ بیرون میکشم صدای مامان که یک بند قربان هوش و استعداد و خوشگلی و نمیدانم چه چیز دیگر نورش میرود لایه صدای خشخش کیسه ها گم می شود کاش تو هم جور میکردی یه سفر میمدی اهواز لیلا بعد عمری همه دوره هم جمع می شدیم عروس که بچهرم می آوردی نمیتونم ماما کارم زیاده دو نفر بیشتر نیستیم صفه می مونه کیسه به دست در خانه راه میفتم و هر چه آشغال هست جمع میکنم بطری های خالی پوست های میوه تهسیگار، دستمال کاغذی و هر نشانه روشن دیگری از دیشب را می گویم، این خونم که تمیز نمیشه از وقتی بیدار شدم دارم جمع میکنم. مهمونی همینه دیگه زندگی آدم پشت رو میشه می, می گفتفتی خانم بیاد کمکت؟ هوش نفر که بیشتر نبودیم گفتم ملوک خانم بیاد چیکار؟ دفلکی شبانه اومد کمک کرد پری روز اومد با هم غذا پختیم دیروزم که من سر کار بودم کلیدو دادم بهش زودتر اومدخونه تو بچه ها پشت در نمونونه کیسه را کنار در میگذارم تا یادم باشد ببرمش بیرون. میگوید دستش درد نکنه. دیر که نرسیدی؟ نه. زودتر رفتم روزنامه. کارم تا از تموم شد. من برم مامان. شنبه ها روزنامه خیلی کار هست. باید زودتر کارهای خونه رو تموم کنم برم سر کار. گوشی را میگذارم سر جایش. ساعت هنوز ده نشده. نزدیک صبح بود که خوابیدم. اما به عشق ص مثل روزهایی که تاب تاب قلبم را در شقیقه هایم حس می و تای گلویم از فکر دیدن سر کلاس های صبح شیرین می شود. هنوز آسمان آبی تیره بود که بیدار شدم. وسط جمع و کردن خانه ده بار شکل را روی کاغذ کشیدم و عکس را بالا پایین کردم و جای باکس ها را عوض کردم تا درست همانی بشود که باید باشد. همانی که به خاطرش یک هفته است تا دیر وقت سر کار می همانی که امیر گفت خوب انجام دادنش فقط از من برمیاد گفت قرار هفته یه بار تو صفحه پرونده فرهنگی کار کنیم فکر می کنم از تو بر میاد چند تا بزن بعد بیا با هم حرف میزنیم نمونه اولشو که در آوردیم بهتر میتونیم بفهمیم باید چی کار کنیم یک هفته است که دارم می نویسم و خط میزنم و جلسه میگذارم تا چیزی کم نباشد و بد نباشد حالا همه چیز برای امروز حاضر است ساعت دوازده قبل از اینکه صفه آرایی شروع شود، مثل مادری که دخترش را عروس می کند باید پروندم را ببندم تا شب، آماده و زیبا برود برای چاپ. یک ساعت وقت دارم و هنوز نصف چیزها جمع نشده مانده. جمعشان نمی کنم. می رد روشن و برراغ مهمانی دیشب در خانه بماند. شمهایی که شبانه دور خانه روشن کرده بود، ظرفهای چینی که بعد از دو سال از تی کمد درآورده بودم و هنوز در جا ظرفی است های بزرگ و کثفی که روی گاز مانده، سطل آشغال پر و کیسه های گره زده کنارش که تا وسط آشپزخانه آمدهند شیرنی خوریه پر از شکلات و لکه زرد روی میز و پیشخان و دسته های مبل میخواهم وقتی خسته و خوشحال از سر کار برمیگردم یادم بیاید دیشب خانم پر بوده پر از مهمان رحمان جارویش را تکیه داد به دیوار و گفت خانم مهندس کمک میخوای؟ آره رحمان سویچ رو بگیر دو تا کیسه ای که توی صندوق عقب مونده رو بیار بالا امشب مهمون دارم گفتم مهمون دارم و ته دلم شیرین شد صد بار از صبح این جمله را گفته بودم آقا جفری خوب بزار مهمون دارم پرتغال مجلسی میخوام برای مهمون ریزا رو بردار نیم کلو رولت هم اضافه کن مهمونا به شاگرد مغازه ها گفتم کیسه ها رو بگذارن توی صندوق عقب ماشین و به همهشان انعام دادم. حقوق گرفته بودم بعد از دو ماه کار. حقوق گرفته بودم و خانوم خانه خودم بودم. خانوم بودم و دلم مهمانی میخواست. مهمانی دادن انتهای زنانگیست. دلم زنانگی میخواست بعد از این همه وقت. دلم خرید از یک بازار بزرگ میخواست. بازاری که بوی مرغ و ماهی و سبزی و میوه تازه را با هم بدهد و در آن هزار شاگرد مغازه سیاه و استخوانی با دست های ترکه کثیف میوه بردارند و نگاه هم کنند و مثل پروانه دورم بچرخند و دنبالم بیایند. کیسه ها را بگذارند توی ماشینم. دلم انبار شدن یک عالم کیسه پلاستیکی را روی میز وسط آشپزخانه میخواست و، سر زدن همزمان به سه مایتاب روغنی که روی انگشت می سوختگی شیرینی که به دهان میرود و سوزشش آرام می شود و صدای تقتق چاغویی که قارچ خورد می کند روی تخته چوبی و بی هوا خواندن آوازی قدیمی با ریتم تخته و قارچ و چاغو و سر رفتن برنج و گند زدن به گاز و بوی خوب پارچه دمکنی و کماوردن ظرف برای چیدن غذاها روی میز و ای که ناگهان می شکند و شکستنش هیچ اشکی در نمی آورد صدای رهایی می دهد به جای نگرانی داد زدم میخوای نیام مگه نه؟ آره تو میخوای من نیام حتی یه بارم نشد بپرسی میای یا نه؟ تصمیم تو تنهایی گرفتی حالا میگی تو هم بیا درخواست بفرست نشستی روی زمین و خورده های را جمع کردی گفتی آرون باش لیلی من که بدون تو نمیتونم زندگی کنم هنوزم که چیزی نشده کلی وقت از برای درخواست فرستادم دلم میخواست رو به روی هم بنشینیم و با هم خورده های شکسته را جمع کنیم و تو عشقهایم را با نوک انگشتهایت پاک کنیم. میخواستم امیدوار باشم و آرام. شامی خوشمزه درست کنم و هزار نفر را دعوت کنم به خانه تا یادمان برود که تو گفته ای بروی و من داد زدم و گریه کردم. دلم تنگ شده بود برای اینکه باز همه از دست پختم تعریف کنند. مثل آن روز در هزار سال پیش که وقتی مهمانها رفتند، دیسه کسیف را از دستم گرفتی و گذاشتی روی و گفتی، نمیدونی چه کیفی می وقتی همه از دست پخته تعریف میکنن لیلی و من انگار بار تمام کارهای سخت دنیا را زمین گذاشته باشم، راضی و خوشحال و خسته روی کاناپه قرمزمان دراز کشیدم. دلم همان خستگی را میخواست بعد از این همه وقت. کیسههایی را که دست خودم بود ندادم رحمان بیاورند بالا سنگینی خریدها را دوست داشتم نفس نفس زدم و از پله ها آوردمشان بالا و روی هر پاگرد گذاشتم زمین و نفس شادم را تازه کردم دست‌های تیز های پلاستیکی روی انگشت‌هایم خطهای قرمز زیبایی انداخته بودند هرچرا خریده بودم گذاشتم روی میز وسط آشپزخانه و خودم دراز کشیدم روی کاناپه تا زغزغ کمرم را آرام کنم گذاشتم فکر چطور چیدن میز و تزئین سالات مرا با خودش ببرد و همه های دیگر را از سرم بیرون کند. روز خوبی را که از من فرار میکرد پیدا کرده بودم و منتظر شبانه بودم تا بیاید و شروع کنیم به کار. میگذارم حال همینطور نامرتب بماند و میروم توی اتاق. رخت خوابم را جمع میکنم و میگذارم روی تخت. از وقتی روی زمین میخوابم دیگر موقع بیدار شدن دنبالت نمیگردم. بهتر از برایم، برای هر دو مان مانتوه ترکمنه سبزم را که تازه از هفته تیر خریدم تن میکنم. سر کار همه گفتن قشنگ است شادی سبزش میآید به لاک قرمزی که از دیشب روی دستهایم هایم مونده رجا گفت نموردیم و دست لاک زده تورم دیدین میساق لاک دوست نداشت آره میساق دوست نداشت پیانو هم می و نمی تونین کنی حفظ شدم دیگه اما تو واقعا پیانو میزنی لیلا؟ میخوام دوباره شروع کنم باور کن یک تکه پرتغال گذاشت دهانش و باز رفت توی خودش چشم بود دیشب میخندید اما خوب میدانم که نبود زوغ نداشت برای غذاهای شبانه و چشمهایش مات و سرخ بود شبانه میگوید دو روز است که حالش خوب نیست گفت به من چیزی نمیگه. تو ازش بپرس. خیلی غمگینه. دلم برش میسوزه. لبه شالم را میگذارم پشت گوشم و ماشین را روشن میکنم. زودتر برسم بهتر است. میتوانم کارم را تا از تمام کنم و بعد روجه را ببینم. اتوبان مثل هر روز ترافیک است. خوب است. میتوانم با خیال راحت موبایلم را از توی کیف بیاورم بیرون و شماری روجا را بگیرم. هنوز دو تا بوغ نخورده بر لیلا نه که مهمونی تا الان کش اومده داشتیم با ارسلان و شبانه یادت میکردیم. میخندم. روجا هم نمی‌خندد از پشت تلفن هم تلخ است تلخ تلخ خنده روی صورتم میماسد. کش اومده شبانه غذاهایی رو که داده بودی آورده برای ناهار با ارسلان بخوریم اونا که شبانه خودش پخته بود دیشب برای اولین بار خوشم اومد از ارسلان به نظرم پسر خوبی اومد آره گفته بودم صدای بوغ ماشینی با صدایش قاطی می شود. باز آمده کنار پنجره. آرام می گوید بد نیست. یعنی امیدوارم خیلی بد نباشه. من فکر می کنم خوبه برای شبانه. زرنگ، اهل زندگیه. شبانه درمیاره در میار از این حالا هوای خونه و مامان شماهان. اما لجباز و یه دندم هست. شبانه رفتار درست با اونو بلد نیست. به نظرم دوستش داره اما نمی چرا مدام میگه معمولیه. همینش خوبه، تکلیف آدم با اون معلومه، یهو بلند نمیشه برو شبانه را تنها بذاره آره، این یکی هیچ جا نمیره، بچه ها میگن پاشو بیا با ما غذا بخور، هنوز که وقت داری نه، امروز زودتر باید برم سر کار، کارم زیاده تو هم که کشتی ما را با این کارت کلمه ها کلمه های خودش است. اما صدا میدانم که مال خودش نیست می دارم چیزی دارد با انگشت های زرد دراز گلویش را فشار میدهد و راه صدایش را بسته از پریشب که آمد با دمجان کوابی ها را آورد و شبانه را برد میدانستم میپرسم تو یه جوری شدی خوبی؟ بعد نیستم تو چطوری؟ همانطور که همیشه میگوید دورش زره آهنی کشیده و هیچ کس را راه نمی می‌گویم. میگویم؟ خوبم دیشب خوش بهم به به من هم خوش گذرد یاد قدیم افتادم اون موقع که همه خوب بودیم انگشت زرد گلوی مرا هم فشار می دهند. میگویم اصبی بیکاری؟ اگه کارم زود تموم شد میتونیم قرار بذاریم هوا را آنقدر با صدا و میق فرو می کشد که صدای چرخیدنش را در ریه هایش میشنوم. نمیدانم شاید را هم طوری میگوید که نفس غمگینش با گفتن آن فوت می شود توی گوشی تلفن و در گوشم سوت می‌زند. انگشت ها دلم را فشار می‌دهند. آه کشیدن بهش نمی‌آید. آخرین باری که قصه خورد کی بود؟ یادم نیست. سنگینی آهش روی دلم می‌نشیند. آه واگیر دارد مثل خمیازه. پخش می‌شود توی هوا و آوار می‌شود روی دل آدم‌هایی مثل من که گیرنده قصه دارند. قصه را از پشت گوشی تلفن گرفتم. وقتی می‌گویم خداحافظ نفس محکمی اندوحگین و مسموم از لای دندان هایم میاید بیرون که هوای ماشین را پر از حسرت هزار چیزی می که باید باشند، اما نیستند. شیشه را پایین میکشم و آه مسموم را با باد خونک پاییزی عوض میکنم. کولر را روشن کردی و کیف کردم از باد خونکی که به صورتم خورد. گفتی؟ لیلی لیلی زنی که تمام تابستان را زیر گیسوی پاییزی او باید گذراند. گفتی موهای تو برای من این رنگی آفریده شده برای اینکه چله تابستون یاد پاییز بیوفتم. میپیچم توی کوچه روزنامه که تمام درخت‌هایش طلایی است. امروز همه چراغها قرمز بود. نکند روز خوبی نباشد. اگر توی همین کوچه جای پارک بود یعنی روز خوبی است. قلبم تاپ تاپ می کند و آرام از کوچه می گذرم. باید خوبی امروز را لای همین ماشین ها پیدا کنم. جان نیست نفس حبس شدهام را رها می کنم توی ماشینو میپیچم تو کوچه کناری. درست پشت سرم ماشینی از پارک می آید بیرون. می دانستم روز خوبی است. معلوم است که روز خوبی است. قرار از سفر را ببندم. دنده عقب می گیرم و پارک می کنم. بلند به نگهبان سلام می کنم و یادم میآید قبل از بالا رفتن حال زن مریضش را بپرسم. زود آمدم. هنوز کسی نرسیده و ساختمان خالی است. حالا باید مثل یک مسافر عجول اتوبوس که از ذوقش زود رسیده، آرام سر جایم بنشینم و منتظر بمانم تا همه برسند و بعد با هم را بیفتیم و امروزمان را شروع کنیم. امیر هم هست. عجیب است که اینقدر زود آمده. با همان لباس سفید همیشگی، دور میز های اجتماعی نشسته و با سرخیزترین آنها چای مینوشد سرش را که بلند میکند دست و پایم را گم میکنم هر وقت امیر را میبینم تمام کارهای آسان و ارادی برایم سخت و حل نشدنی میشوند یادم می رود همیشه چطور سلام میکنم و چطور می نشینم و هزار تا چطور دیگر کیف و لپتاپ هنوز دستم است که سلام میکنم با صورت خندان همیشگی جواب میدهد و میگوید یه لیوان چایی بریز بیه با ما سپونه بخور تشکر میکنم و میگویم خوردم بلند میشود و میآید سمت میز ما چه زود اومدی؟ دیشب مهمون داشتم زود بیدار شدم همه وقتی مهمون دارن دیر بیدار میشن تو چرا برعکسی؟ میخندد و به ریشش دست میکشد میخندم و نمیگویم ذوق صفحه جدید نگذاشته بخوابم. میگوید معلومه کم خوابیدی چشمات قرمزه مینشیند روی صندلی وسایلم را که سنگینیشان شانه هایم را در داورده میگذارم روی میز. رو به رویش و مثل بچه ای که به معلم محبوبش درس پس می دهد، همه همهی خورده صفحه را از حفظ برایش می گویم. میگویم که عکس ها را گرفتهام و تمام متنها را تا دیروز زهرت کردم. بعد با دست توی هوا شکل و جای هر مطلب و عکس را در صفحه نشانش میدهم. دستهایش رو زیر چانه زده و با لبخند آرامی نگاهم میکند زیر لب میگوید آلیست و بلند میشود میگوید هنوز سود برای صفحه بستن من میرم جلسه بشین کارای خودتو انجام بده تا کنم با نگاهم دنبالش میکنم که برمیگردد دستهایش را رو میگذارد روی میز و آرام میگوید دیدی گفتم میتونی خیالم همیشه از تو راحته از سالن بیرون می رود و خیالش از من راحت است خیالش از من راحت است و این جمله ده بار در سرم تکرار می شود و تمام خون بدنم را میآورد توی صورتم داغی نفسم لبهایم را گرم می کند و باز می شندم. خیالم از تو راحت است کاش بودی و میدیدی در کاری که همیشه می گفتی برای من نیست چطور رویم حساب می کنند و خیالشان از من راحت است بشقاب را هول دادی جلو و قاشقت را پرت کردی توی آن. آب مرغ قمز رنگ پاشید به تیشرت زردت. با صدایی که صدایی تو نبود داد زدی. <تصفح> یه افتست دارم التماس میکنم حالا که پذیرش نگرفتی اقل بیا مدارکتو تو بده برای ویزای افتو. به عنوان زن من بتونی بیای. اون وقت میشینی جلوم و میگی توی مجله کار پیدا کردی. تو؟ تو میخوای منو دیوونه کنی. این کار توی آخه دو ماه دیگه که خسته شدی از اون دیگه دیره برای همه چیز آرام گفتم خسته نمیشم بلند شدی و ایستادی با صدای صندلی که پشت سرت خورد زمین تکان خوردم نگاهت کردم صورتت سرخ سرخ بود رنگ آب مرغی که روی لباست پاشیده بود صدایت بالاتر رفت دو ساله که صد تا کار امتحان کردی و از همه خسته شدی کی میخوای بزرگشی؟ کلافه شدم از این بچه بازیات. زندگی من مثل زندگی بابات نیست که همه چیز توش آماده باشه برای تو. که هر کاری دوست داری بکنی و عین خیالت نباشه. من میخوام مثل آدم بزرگا زندگی کنم. تو نمیذاری. میرم لیلا جدا میشم و میرم. به خدا میرم. اون وقت پشیمون میشی. برای خودم سالات کشیدم و آرام تر گفتم. جدایی حرفشم زشته. اگه همه چیز درست شد و رفتی، اگه همه چیز درست بود و موندی، بعد حرف جدایی رو بزن. قاشق و چنگال را گذاشتم روی میز. سرم را انداختم پایین و گفتم تو نمیتونی، نمیری بدون من. تویچ را برداشتی و با همون لباس رفتی بیرون. فکر کردم کاش روی لکه نمک پاشیده بودم که وقتی برمیگردی گردی راحت شسته شود از صدای دری که به هم کوبیدی باز تکان خوردم کاش این جمله آخر را نگفته بودم نباید تو را سر لج می اگر این مسابقه مسخره را شروع نمی کردم نمی رفتی بدون من تو که دشمن من نبودی چرا داشتم با تو می اگر آرام میگفتم گفتم نرویم، اگر می نشستم و حرف می زدم و می گفتم نمی توانم زندگی کنم بدون تو، نمی رفتی بدون من. روجا گفت، بی خودی با خودت کلنجار نرو. تصمیمشو گرفته بود. هر کاری هم می کردی می رفت. راهتون جدا شده بود از هم. راه من جدا شده بود از هم. از کی؟ چطور؟ یادم نیست، شاید از همان روزی که نشستی رو به رویم و گفتی فکرهایت را کرده ای و دلت میخواد دکتر باشی و استاد باشی و دانشمند. گفتی راهش این است که بروی و من به جای اینکه کاری کنم که یک نفر باشیم با یک زندگی به جای اینکه بگویم هر تصمیمی که بگیری کنارت می خودم را جدا کردم از تو و گفتم هر کاری راحتی بکن جلوس را نمیگیرم. صدای تلفنم میآید مامان است. لیلا جان بابا میگفت دوست داره بعد از مدت تو توی را با هم پیشش باشین گناه داره رفتی سر کار یه بار دیگه سعیکن ببین میتونی کسی بذاری بذاری جای خودت. یه سربی اهواز سرکارم مامان میپرسم اما فکر نمی کنم بتونم کارم زیاده نمیگویم هیچ حوصله خانه را ندارم و چقدر از مهمانی هایی که قرار است هر شب به خاطر آمدن صمی بدهد بیزارم آقای دکتر فلانی، رئیس فلان بیمارستان و پرفسور فلانی استاد فلان دانشگاه با خانومهایشان مثل ملکول گاز در فضای بسته همه جای خانه را پر می کنند. خانوم های هزار قلو که همیشه خدا شبیه همند. چون همه به یک آرایشگاه می روند. هر آرایشگر خوش اقبالی که آن سال در احواز بختش گفته باشد و اسمش بین خانم دکترها افتاده باشد. یک روز همه موهای زرد دارند با ماتیک طلایی روز دیگر موهای سیاه با ماتیک قرمز. یک ریز حرف میزنند و وسط صحبت از آخرین سفرشان به فلان جزیره و گرفتن اخبار بچه هایشان که در مجارستان و کانادا و مالیزیو نمیدانم کجای دنیا پزشکی میخوانند بحث را آرام آرام میکشانند به من و سرآخر با ترس و خجالت با صدای آهسته سراغ تو را از من میگیرند یکی یکی مثل مورچههایی که سوسک مرده ای را میخورند جمع میشوند دور خاطره های تو با هم بحث میکنند و بحثشان بالا میگیرد یکی میگوید اشتباه کردم که نرفتم آدم که شوهرش را تنها نمیگذارد یکی دیگر دست مهربانش را به سرم می کشد و میگوید حیف بودی لیلا جان اهل نبود شوهرت دیگری میگوید مردها همینند بیچش مرو. زن پیری هم هست که هر بار میگوید سیاست خانوم از بی سیاستی خودت بوده و من دوست ندارم برای کسی بگویم که حتی مارگار تاچر هم در خانه چیزی نداشت به جز زنیتش که فوقش با آن می توانست دل کسی را نگه دارد تو دلت رفته بود ماندن نداشتی دیگر هیچ کس نمی توانست نگه دارد چه برسد به من که دستهایم دور تنت باز بود و خودم پرد دادم مثل که در آسمان جلوی چشمم بال زدی و دور شدی و دور شدی تا دیگر ندیدمت حالا دیگر هر چقدر هم زل بزنم به آن تکه آبی که در آن محف شدی و فریاد بزنم من هنوز همه ی هایم را نخاندم بر نمی گردی هیچ کدام را نمیگویم. گویم به جایش آرام آرام با لبخند یک صندلی یک صندلی از جمعشان کنار میروم و می رسم به آشپزخانه. مثل آخرین سرباز در شهری اشغال شده پشت دیوارهای سرد آشپزخانه پناه می گیرم دیازپوکسای دم را با یک لیوان آب خنک میخورم و نمیفهمم به خاطر خونکی آب است که آرام میشوم یا قرص اینقدر زود اثر کرده. آنها بدون من همینطور درباره من بحث میکنن تا موقع شام. بعد از شام نوبت کس دیگری است. نگاه میکنم به ساعت. هنوز زود است برای کار. آنقدر وقت دارم که سر سب روزنامه امروز را ببینم. میروم توی آشپزخانه و برای خودم چای پر رنگی می ریزم. بخارش را نفس میکشم و بعد میگذارمش روی میز تا با حوصل سرد شود. فرو میروم توی صندلی و روزنامه را برمیدارم. لای ها را از حفظ سر جایشان میچینم و جوری ورق میزنم انگار پیرمردی هستم که در پارک نشسته و تا شب برای نگاه کردن به این روزنامه وقت دارد. پیرمرد به صفحه من میرسد و نگاهش روی آن می ماند دلم پرپر میزند. نگاه میانداززم به صفحه تا ببینم همه چیز سر جایش هست یا نه. هست امیر اسمم را بالای یکی از مطلب ها زده تون میخوانمش. باز این ویراستارها کاما را کردند خط تیره. باید دوباره بهشان بگویم که چقدر از خط تیره در متن بعددم میآید. اما مهم نیست پیرمرد درگیر مطلب شده و خط فاصله آزارش نمی دهد. به آخر مطلب که می رسد، نگاهی به اسم می اندازد. قدم تو اونتر میزند. پیرمرد سریع تکان میدهد. عجب کشداری میگوید و به ذهنش میسپارد که مطلب را برای دوستش یا زنش یا پسرش تعریف کند و می روید سراغ مطلب بعدی. چقدر صفه را دوست دارم. صفحه ای که بچه کوچک من است. بچه ای که هر روز نو می شود و باید لباس تازهی برایش بدوزم. میتوانم هر روز بنشانمش روی پایم و براندازش کنم. بعد دوباره با لذت آن را حامل شوم و به دنیا بیاورمش و بهش نگاه کنم که چطور یک روز پا می گیرد و همراه بچه های دیگر می رود دنبال زندگی خودش. نشسته بودم روی صندلی آزمایشگاه و فاکتوری که دستم بود از عرق خیز شده بود. دارو برم پر بود از آدم هایی که هر کدام تکه از بدنشان را در شیشه کرده بودند و با خودشان این برام برمی کشندند. خون و ادرار و تمرهای خوب و بد، جمع شده بودم در خودم و موازه جدید خودم بودم. در هر صدایی که از بلنگو میآمد اسمم را میشنیدم و میپریدم از جا میترسیدم نمیخواستم یک تکه کاغذ لعنتی دستم بدهند و بگویند او نیست کیفم روی دلم بود و دستهایم حلقه شده بود دور او میدانستم تنها نیستم حسش میکردم ته دلم آرام خوابیده بود توی همین چند روز دوست شده بودم با او انگار همیشه آنجا بوده اما من نمیدیدمش با هم حرف می زدیم. یعنی من حرف می زدم و او حرفش را یک جوری توی سرم می گفت که میفهمیدم رفته بودیم خیابان بهار او گفته بود چی دوست دارد از آبی ها خوشش میآد پسر بود لابد برایش یک پلیور خریدم و یک کلاه هر دو آبی رژ لباسار دید گفت دیوانه ای می ساخ چهار ماهه که رفته سه روزه که دلم به هم میخوره میگن مادرا حس میکنن من هم حسش میکنم بیا با هم بریم آزمایش بده تا خیالت راحت بشه نمیخوام نمیخوای چون میدونی که چیزی نیست بی خودی برای خود بزرگش نکن لیلا بعد ازیت میشی اگه واقعا باشه چی؟ خودم بزرگش میکنم لیلا کاش شبیه آریم بشه توپل و سفید با موهای تلایی بعد رو کرد به رجا به نظرت اگه حامله باشه میساق بر میگرده؟ رجا بلند شد هر دوتا تون دیوونه ای منم دیوونه می کنید بر می گشتی می که بر مرا که نمی توانستی تنها بگذاری با این بچه اصلا تو آدم تنها گذاشتن نبودی رفته بودی که مرا بترسانی من چرا دیر کرده بودی آن روز همون نبودنت مهم نبود اگر هیچ وقتم بر نمی گشتی من دیگر تنها نبودم او توی دلم آرام خوابیده بود و من باید مواظبش می بودم. آرام راه میرفتم که آب توی دلش، توی دلم، توی دلمان تکان نخورد. نمیخواستم آزمایش بدهم. آزمایش لازم نبود. دادگاه هم و برای جدایی جواب آزمایش را میخواست. اسم آزمایش که آمده بود، حسش کرده بودم و بعد تنها و کسیف و لهیده روی صندلی نشسته بودم تا صدایم کنند. صدایم کردند. با زانوهایی که میلرزیدند و تنم را به زور نگه می رفتم کنار باجه فاکتور مچال شده را دادم به زن پشت باجه گفت حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟ نمیدانم را از لای گلولهای گفتم که گلویم را فشار میداد گلولهی که از وقتی رفته بودی توی گلویم منده بود و هیچ جوری پایین نمیرفت نبا آب، نبا نان، نبا آنتی بیوتیک هایی که ماها خوردم گلوله از جایش تکان نمیخورد به اندازه یک عمر گشت تا جواب رو پیدا کرد نگاهی به کاغذ و نگاهی به من کرد و گفت منفیه یک بار خالی شدم هوای سالن تمام شد و تنهایی به دلم چنگ انداخت چهار ماه بود که فشار خانه خالی تنم را خورده بود و چیزی از آن باقی نگذاشته بود و حالا فشار تن خالی از درون تهمانده چیزی را که از من باقی مانده بود میخورد او مرده بود و امیدم به برگشتاند، به تنها نماندن به بزرگ کردن پسری که اسمش سیاوش یا فرهاده است، نویسنده و پیانیست است و هیچ وقت هیچ دختری را تنها نمیگذارد مرده بود. چیزی دلم را از سینم بیرون می کشید و ریز ریز می کرد و دور می انداخت. زانوهایم دیگر بدنم را نگه نمی داشتند. یک بار همه چیز از جلوی چشم هایم دور شدند. سندلی ها، آدم ها، باجه، صداها ها کم شد و محف شد و سفیدی همه جا را پر کرد. چشمایم را که باز کردم، صورتم خیس بود و زن پشت باجه داشت میگفت چی شد یهو؟ بمیرم، بچه میخواستی؟ موبایل منو ندیدی؟ لیلا، امیر تمام کاغذ های را می بیرون و لابلای آنها را می گردد. کیف چرمیش را باز می کند و می‌بندد. نگران است و آرامش ابدی صورتش که لای ریشهایش پنهان می شود و هر وقت لازم باشد خودش را نشان میدهد پیدا نیست. نگرانیش مستره میکند. می, کند. می چیزی شده؟ موبایلم رو پیدا نمی کنم. بلند می شود. را بر و در گوشه میز روی هم میگذارم. موبایلش زیر یکی از کاغذ هاست. ممنون لیلا. نگرانم می‌کنی چیزی شده؟ نه، نگران نباش. صفههای من آماده نشده، خبر نداری؟ دال آخر نداری در دهانم نمیچرخد. بعد از دو ماه هنوز سرگردانم که با امیر چطور حرف بزنم؟ با دال یا بیدال. دال؟ ها بیدالهایم هایم بیشتر شده، اما هنوز به اسم نمیتوانم صدایش کنم. میگویم ببین یا ببخشید یا هر چیز دیگری که مرا از گفتن امیر یا آقای صالحی نجات دهد میگوید نه فلان عجله نکن می رود اما نگرانیاش در فضا میماند نگرانی مثل جادوی پیرزن جادوگر سیندرلا دورم میپیچد و لباس دیگری به تنش شادم میپوشاند قلبم انگار در گلویم میزند و مزهٔ دهانم را تلخ می کند دلیلش افسردگی پایزه است. میدانم افسردگی بهاره می شود، پایزه می شود، واکنشی می شود، تطابقی می شود و هر روز که دلش بخواهد با یک اسم تازه اجازه دارد بیاید و گلویم را تلخ کنم. نباید بهش فکر کنم. بابا گفت، حواظت رو پرت کن بابا جان. به چیزای خوب فکر کن، مثلا به کارت که چقدر دوستش داری؟ به پرونده هایم فکر می کنم. به روزهای سفید آینده که هر کدامشان قرار است به عشق دوشنبه ها که صفحه تازم در روزنامه چاپ می شود بگذرند. خودم را می بینم که تا شب در دفتر روزنامه ماندهام و کار میکنم آدمها را می بینم که دوشنبه ها کنار کیوسک روزنامه را ورق می زنند و از روی شانه های هم پروندههای مرا می خانند. تیتر مطلبها روی جلد می رود. روزنامه در همه دکهها ها تا ظهر تمام میشود. تمام سایت ها مطالبه مرا میگذارند و کسانی که پرونده به ضررشان تمام شده هر روز به روزنامه زنگ میزنند و امیر از من دفاع میکند و جواب همهشان را میدهد. سلام لیلا چه زود اومدی؟ ساغر وسایلش را په می کند و نشیند پشت میز. چقدر لایک به دستات میاد؟ مهمونی خوب بود؟ آره خوب بود کاش اومده بودی؟ ببخشید نشد. کسی اومده احسان و امیر؟ امیر هست؟ احسان هنوز نیومده. امروز چی داریم؟ هنوز خبرها رو چک نکردم. زوده. ساغر هدفونهایش رو توی گوشش می‌گذارد و سرش رو فرو می‌برد توی مانیتور. نگاهم میچرخد دور سالن که مثل هر روز دارد آرام آرام پر می‌شود. دوستشان دارم. خوشحالم وقتی با هم کار می‌کنیم و با هم می‌خندیم. اینجا منطقه امن من است. جای آرام دنیا. جایی که میتوانم لابلای آدمهایش قایم شوم و پناه بگیرم و هیچکس کس متواند آزارم بدهد. آدمها را نگاه میکنم و نفس عمیق شادی میکشم که تازه از لابلای خورد ریزهای ته قلبم پیدایش کرده. سایت های خبری را برای پیدا کردن خبرهای امروز باز میکنم. خبرها از جلوی چشمم دور میشوند و لابلایشان نقش صفحه‌ای را میبینم که امروز باید ببندم. برای بار هزارم شکل صفحه را روی کاغذ می کشم. کار امروز را باید بگذارم برای بعد از بستن صفحه دیر نمی شود. میتوانم قرارم را با روجا عقب بیاندازم. اصلا میگویم شب بیاید پیشم و بماند حتما امشب هم خوابم نمیبرد. مثل دو ماه پیش که منتظر درآمدن اولین شماره روزنامه بودم و تمام شب لایه ملافه خیس از عرق به خودم پیچیدم تا صبح شد. ده بار کامپیوتر را رو روشن و خاموش کردم و رفتم توی رخت خواب و باز خوابم نبرد. ساعت چهار صبح سوار ماشین شدم و رفتم جلوی اولین روزنامه فروشی. بسته بود. شیشه ماشین را کشیدم پایین. در شهر چرخیدم و گذاشتم باد خونک اول صبح آخر تابستان بخورد توی صورتم. ساعت شش دوباره برگشتم و آنقدر کنار روزنامه فروشی ماندم تا باز شد و روزنامه را گرفتم. دوره جدید شماره یک. یک ساعت کنار دکه ماندم و به آدم ها نگاه کردم که چطور از کنار روزنامه فروشی رد میشوند و روزنامه را برمیدارند بعد با یک کیک شکلاتی بزرگ رفتم شرکت پیش رجا و شبانه. رجا گفت اگه هر روز حالت همین باشه خودم هر روز به همه شیرینی میدم صفحه رو گذاشتم در وبلاگم و منتظر ماندم تا ببینی. وبلاگم رو باز می کنم. امروز هم هیچ نظری از تو نیست. حتما میخوانی؟ مگر میشود نخوانی قرورت غرورت نمیگذارد چیزی بنویسی دو ماه هست دارم از کار جدیدم مینویسم و هنوز چیزی ننوشته ای. تمام روزهای روشن این دو ماه را رو نوشتم. روز اولی که روزنامه درآمد روزی که امیر گزارش یک صفحه را به من داد روزی که تیتر خبری که نوشته بودم روی جلد رفت و سردبیر جلوی همه از کارم تعریف کرد. داد زدم قبلا که عاشق همین دیوونه بازیا بودی؟ بازی برای تفریحه، برای روزای دانشجوییه، برای همه زندگی که نیست خواهش میکنم بزرگ شو لیلا دیگر نمیگفتی لیلی خیلی وقت بود فقط میگفتی لیلا دوستم نداشتی و مثل همه آدم های دیگر برایت لیلا بودم مجله را پرت کردم روی میز بزرگ نمیشم میمونم اینجا و کاری را میکنم که دوست دارم نگاه میکنم به ساعت چیز داغی در دلم می ریزد دیر شده دستم را جلوی ساغر تکان می دهم تا هدفون را از گوشش بیرون بیاورد تو نمیدونی امیر کجا رفته؟ یه صحب پیش قرار بود به من بگه برم صفحه ببندم. نمیدونم برووی مطلبات آماده شده یا نشد حروف چینی هنوز حاضر نکرده. باز هدفون را میگذارد توی گوشش و با پاهاش روی سنگ کف زمین زرد می گیرد. نگاه میکنم به میز کناری دبیر اجتماعی نیست. دبیر ورزشی هم نیست. به ها نگاه می کنم. بچه ها دارند بی خودی در اینترنت میچرخند. بلند می شدم و از سالن می رون بیرون. حتی پیرمرد مو اتاق روبرویی هم نیست. از پله ها می رون پایین. خانم های حروفچین تون, تون تایپ می کنند و صدای خوردن ناخون های بلندشان روی کیبورد صدای کارگاه خیاطی می دهد. ببخشید. بپرسم مطلبایی که از چهارشنبه تا دیروز رد کردم حاضر شدن یا نه. میتونم مطلب ها رو ببینم؟ سرپرست حروفچینی چینی را نشانم میدهد. فقط چیزی رو به هم نزن. لابلای پیریند ها میگردم. همه مطلب‌هایم هست. برشان میدارم و میروم بالا تا به امیر بگویم همه چیز حاضر است. باید سفر را زودتر ببندم تا اگر مشکلی داشته باشد وقت داشته باشم سر حوصله درستش کنم. دارد دیر میشود. زاغر هدفون هایش را در نه ولی مطلبم حاضره. الان بهش زنگ میزنم. باید بیاد سوزجرام چک کنی. دیره. شماره اش را میگیرم. با هر بوقی که میخورد و جواب نمیدهد. قلبم محکم تر میزند. بر نمی داره. جلس هست هنوز. بشین پای کارهای خودت بالاخره میاد. مینشینم و یک قلوپ از چای سرد شده ام می خورم. رو باز میکنم. بخوانی و ارسال کنید. بچهداری آقایان. قیمت های استثنایی. مرسی برای دیشب شبانه است نوشته دیشب به او و ماهان خیلی خوش گذشته نوشته لباس رنگی چقدر بهت میآید همیشه بپوش نوشته خنده هم خیلی بهت میآید و تهش ده تا علامت تعجب و چشمک و خنده گذاشته. نوشته ماهان بعد از مهمانه تا صبح نخوابید و برایت یک نقاشی کشید نوشته نقاشی را اسکن کردم که همین امروز ببینی اصلش را هر وقت همدیگر را دیدیم بهت میدهم. نقاشی را باز می کنن. یک پنجره کشیده که زیرش هشت آدم بزرگ و یک بچه ایستادهاند. همه تنهایی دایر دارند و دستها و پاهایی با خط صاف. فقط یکی از آنها را رنگ کرده. کسی که رنگ کرده موهای زرد دارد و پیراهنی که زرد و قرمز و سبز و آبی است. آن منم. کنار من خودش را کشیده بالاتر از همه، و بالای سرش یک ام بزرگ نوشته که بشناسمش. کاش ماهان مال من بود. لیست دوستانم را از گوشه کامپیوتر باز می و دنبال شبانه می گردم. چراغش روشن است. می نویسم. خوبی؟ آره تو چطوری؟ صفحتو بستی؟ نه هنوز. امیر غربود به هم خبر بده. دیر کرده نگرانم. تو همیشه برای همه چیز نگرانی. نگران نباش. علامت خنده می گذارد. من هم من می مینویسم. چه خبر از روجا؟ امروز بهتره؟ بهتر از دیروزه، اما هنوز حواسش پرده. از قرار میزنم میبینمش. حتما نگران رفتنه. هرچی نزدیکتر میشه، بیشتر بهش سخت میگذره. میساقم همینطور بود. اون اواخر همش گیج و منگ بود. چیزی نمیگوید. خوب است که نمیگوید. نمیخوام حرف تو رو بزنیم. امروز وقتش نیست. خوبیه چط همین است. هر وقت بخواهی چیزی میگویی و هر وقت نمیگویی و بدون خداحافظی گم میشوی. میتوانی با بغض بخندی و هیچکس نفهمد نفهمت داری گریه میکنی. میتوانی جواب حرفی را که دوست نداری ندهی. دستهایت را زیر چانه بزنی، خیره شوی به مانیتور و بگویی سرم شلوغ است. میتوانی پشت کامپیوتر بنشینی و خاموش شوی. در یک لحظه اسمت لای اسم آدم ها گم شود و هیچکس نگرانت نشود. مینویسد ببخشید ارسالان صدام کرد خوبه آره، خیلی بامزه شده از پیروز تا حالا مثل شهرا رفتار میکنه هی hey به من احترام میذاره ده جملهش میخندد و یک شیطانک کوچک میشود با دندانهای سفید من هم با دهان باز میخندم و فکم بالا و پایین میرود دایرههای گرد زردی هستیم که هر دو میدانیم داریم با صورت های گرفته تر از همیشه به مونیتور نگاه میکنیم نشسته بودم روی مبل و به مانیتور نگاه میکردم از وقتی که در را پشت سرت بسته بودی و رفته بودی فرودگاه خیلی گذشته بود تاریک شده بود و روشن شده بود و به چراقها دست نزده بودم تنابهایی در دلم به هم گره میخورد و باز میشد و مزه گند ته گلویم را تلخ میکرد گرمم میشد و تمام تنم عرق سرد میکرد و باز داغ میشدم استخانهایم خشک شده بود و درد میکرد درد میپیچی توی دستهایم راه میافتاد تا توی زانوها و باز از نو. تریاک بودی. داشتم ترکت می کردم. فکرها در مغزم با سرعت هزار دور در دقیقه می چرخیدند و تعمق گس فکرهایی به هم ریخته می ریخت در دلم و حالم را به هم می زد. دلم می خواست تمام مغزم را بالا بیاورم و راحت شوم اما می ترسیدم تکان بخورم. می ترسیدم تکان بخورم و بفهمم بیدارم و آن وقت همه چیزهایی که دیده بودم واقعی بشود. روی مبل خوابیده بودم و هر بار با کابوس پرواز هواپیمایت پریده بودم. کابوس میدیدم تنم باند فرودگاه است. هواپیمایت تنم را پاره می کند و بلند می شود. کابوس میدیدم هواپیمایت موشک شده و از خانه پریده و از صدا و آتشش دیوارهای خانه آوار شده روی سینه و خفه شده میترسیدم می میترسیدم به می به اتاقی نگاه کنم که لباسهایت روی تختش افتاده بود می ترسیدم حمام بروم و بوی تنت از تنم پاک شود. میترسیدم پنجره را باز کنم و نفس از خانه بیرون برود. لباسهایم هایم خیس خیس به تنم چسبیده بود. در خانه اکسیژن نبود. سقف ارتفاع نداشت. با صدای تلفن ده بار پریده بودم و جواب نداده بودم. رجا آمده بود دم در. کوبیده بود به در، خواهش کرده بود، دعوا کرده بود اما در را باز نکرده بودم. زانوهایم تکان نمیخورد و صدایم در نمیآمد. نمیتوانستم به کسی بگویم رفته ای رفتنت واقعی می اگر زبانم در دهان میچرخید و صدا از درونم بیرون میآمد و میگفتم که رفته ای. کاش مرده بودی اما نرفته بودی اگر مرده بودی چیزهای خوبت برایم زنده می ماند و بس بود برای بقیه عمرم اما رفته بودی و هیچ چیز خوبی از تو باقی نمانده بود به مانیتور نگاه می کردم و به چراغت که خاموش بود. خاموش بود و تا وقتی روشن نشده بود نرفته بودی. هیچ جا نرسیده بودی. پشت در منتظر ایستاده بودی. فقط باید در می و می آمدی تو. نیامدی. بلند شدم و در را باز کردم. نبودی. برگشتم. چراغت روشن بود و تا آمدم بپرسم کجایی نوشتی؟ من رسیدم لیلا. همه چیز درسته. دانشگاه و خونه و همه چیز. کاش اومده بودی؟ نوشتم تابستونار چطور میگذرونی بدون موهای من؟ جواب ندادی. تابستان را گذراندی؟ نفهمیدم چطور. عکس هایت را نشانم دادند. عکس های خوشحال با با, با پیراهن شاد زرد و سبز و قرمز که هیچ وقت دوست نداشتی و با کلاه لبهدار که تاب موهایت را میگرفت. دم این پل و آن رودخانه ایستاده بودی و اکس های گرفته بودی که در آنها میخندیدی. میخندیدی اما خوشحال میدانم که نبودی. از چشمهایت میفهمیدم. ساغر میگوید راستی لیل و شماره ما علم پیانوی برات گرفتم. بلند میشود. شود. دستهای قلاب شدهاش را بالای سرش به آسمان بلند میکند و خمیازه میکشد. میگویم ممنونم اما چرا امیر نهیم از ساغر؟ دیگه نمیتونم صبر کنم. من که میگم برو صفحتو ببند، امیر حواس امیر حواس نیست. چرا نمیآید؟ مگر نمیداند امروز چقدر منتظرم. انگار قرار از سر صف کارت هزارافرینم رو بگیرم و قبل از خوردن زنگ در حیات مدرسه دور سنگر سنگی بدوم. دست هم رو گرفته ایم و میچرخیم. دستمال من زیر درخت حالبالو گم شده. گم شدن. گم کردن چرا از بچگی گم کردن رو قبل از پیدا کردن یادمان دادند؟ شاید برای همین است که هر روز تکه به تکه چیزهایی را از زندگیمان گم میکنیم که دیگر هیچ وقت پیدا نمیشوند. گمشان میکنیم و زندگیمان هر روز خالی و خالی تر می شود تا دیگر جز یک مشت مشتخاطرهی خاک گرفته از گم کرده ها. چیزی در آن باقی نمی ماند. باید صفهم رو ببندم. باید شروع کنم به کار. هر کاری که باشد کار که می کنم حواسم را گم می کنم. در یک اتاق که گرد شیشه قایم می شدم و فراموش می کنم که چطور زنده ام؟ آن وقت قلبم آرام می شود و دیگر به سین هم نمی مطلب ها را انگار که سرباز های شکست خورده بلا تکلیفی هستند در دست فرمانده شکست خوردهشان دستم می گیرم و میروم طبقه بالا کسی در راه پله نیست. انگار روز تعطیل آم روزنامه سالن‌ها خالی هند. فضا کریخت از و ساعت انگار که دارد خمیازه می‌کشد، زمان را کش می دهد هیچ چیز شبیه ذره‌های شلوغ و پرخبر شنبه نیست صفحه بندها پشت به هم پشت مانیتورهایشان بیکار نشستند از بچه تحریریه کسی بالا نیست به مدیر صفحه بندی می گویم پرونده ویژه فرهنگی اومده میتونم صفش صفحه ببندم؟ اکثرم گذاشتم توی شبکه آقای صالحی نیستن؟ نه اما باید امروز حتما سفر رو ببندم خودشون گفتن باید کمی سب کنین هنوز معلوم نیست چی میشه چی میشه ما صفهمونو میبندیم اگه اصلاح خواست میگن دیگه موبایلم زنگ میزند ساغر است لیل جان میای پایین امیر اومده قلبم محکم میکوبد و از چیزی خالی میشود سربازهایم را زیر بغل میزنم و با هم می سوریم پایین انگار آبیم و از پله ها جاری میشویم راهرو شلوغ شده آدمها دسته دست جمع شدند و حرف میزنند راهرو شبیه دالانهای ساختمان دادگاه خانواده است میشنوم موقته حل میشه همه توقیف ها موقتن دیگه تموم شد در اتاق سیصد و یازده با قاضی عباسی قرار داشتم شش ماه بود رفته بودی و قرار بود قیابی جدا شویم با یک پوشه سنگین در دست روی هیچ راه میرفتم انگار روی هیچ راه می‌روم می‌ایستم و نفس میکشم. همه چیز را از نغزم بیرون میکنم. واقعی نیست هیچ چیز واقعی نیست میتونن اعتراض کنن اعتراض به چی به کی وارد سالنمان می‌شوم امیر کنار میز مایی ساده و ساغر رو به رویش است با صدای آرام و گرفته میگوید زنگ بزن به احسان و بقیه اگر را افتادن دیگه نیان این فضاقمگینشون میکنه جلو نمیروم جلو نمیرفتم از لای در اتاق قاضی پیری را دیدم که کت نیلی پوشیده بود در گرمای تابستان و پشت میزی پر از پرونده های مسموم نشسته بود و داشت کاغذ را زیر و رو میکرد امیر سر میگرداند و مرا میبیند اومدی لیلا ببخشین وقتی زنگ زدی جلسه بودم مشکلی پیش اومده که نمیدونیم کی حل میشه. صدایش آرام و مهربان است. آرام و غمگین صورتش چل شده و گونه هایش پایین افتاده پیر شده چشمهایش ریز و سرخ است زاغر مینشند نمیتوانم چیزی بپرسم نباید بپرسم. اگر امیر چیزی بگوید همه چیز واقعی می شود. باید بگویم حرف نزند. هیچ چیز نگوید. حتی یک کلمه. نمیتوانن. لبهایم به هم قفل شده. لبهایم به هم قفل شده بود. ایستاده بودم کنار در رو نمیتوانستم تکان بخورم. غازی سرش را آورد بالا. کاری داری دخترم؟ امیر میآید جلو و حرف می زند. کاش نزند. قراره یه مدت روزنامه بسته باشه. هنوز اتهام خاصی نداریم اما اجازه انتشار ندادن. چون اختار نداشتیم امیدواریم زود حل بشه اما بشین لیلا مینشینم پوستم پوسته سختی شده که هیچ چیز به آن راه ندارد سنگ شدم مثل نیوبه بدون اینکه از از پایم اشک بیاید نگران نباش بار اولمون که نیست چند وقتی که بازم یه روزنامه میگیریم و همه با هم میریم اونجا این بار تو هم حتما با ما هستی از همون اولش لبخند تلخ زشتی را انگار به زور روی لبهایش چسباندند. کسی صدایش می‌کند. لبخندش پاک می شود و می‌رود. قاضی هم می‌کرد. پوشم را باز کردم و مدارک را نشانش دادم. نامه دارم از شوهرم برای طلاق توی دهانم نچرخید. صدایم از لای گلوله‌ای می‌آمد که توی گلویم گذاشته بودی. فلش می‌خورد توی صورتم. کسی عکس می‌گیرد. دوربین را پایین می آورد و می گوید توقیف رو جلد میرن عکس میخوان. خوان. ساغر هایش را روی میز گذاشته و به بچه ها نگاه می کند. کسی سرش را در دست گرفته. کسی تکیه داده به دیوار. کسی دارد با موبایل حرف می زند. نه مثل اینکه امروز زور حیات نظارت جلسه داشته. تازه اعلام کردن. بچه رفته بودن جلسه که حلش کنن. نه نشد. راضی نه. سربازهایم در دستهایم خیس شدهاند. میگذارمشان روی میز و بلند میشوم از در سالن می بیرون. مردی روی پله ها نشسته، سرش را در دستهایش گرفته و شانه هایش تکان میخورند. عکاس از شانهایش هایش عکس می گیرد. سه حروف چین روزنامه کیف را رو روی دوش انداختن و از در شیشه بیرون می روند. پسری با عصبانیت از اتاق ممیزی بیرون میآید و پای می رود. قاضی گفت: توافقیه نمیخواید بیشتر فکر کنید گفت دخترم حالت خوب نیست میخوای بری یه ماه بعد بیای لیلا اینجایی ساغر است میمونی باید بمونیم صدایم رو نمیشناسم میگوید من زنگ زدم گفتم بچه ها نیان امیر گفت بریم اما فردا صبح بیایم گفت مرتب سر بزنیم و خبر بگیریم تا مشکل حل شه میرویم توی سالن میگوید که نیستیم، بار اولمون هم نیست که همه میدونن که نه فردا نه هیچ وقت دیگه کسی به این روزنامه بر نمیگرده دفتر را هول داد جلان. اینجا رو امضا کن دخترم کجا انگشتش را گذاشت روی دفتر خطها را نمی امضا کردم امه کل کشید یک مشت نقل ریخت روی دفتر نقل ها بالا و پایین پریدند خندیدی خدا حافظ. از دالان ها گذشتم و مثل خوابگرد ها آمدم بیرون خیلی دور بودی آن روز توی این دنیا نفس نمیکشیدی. کسی که از او طلاق گرفتم تو نبودی یک مرد مرده بود. تاکسی گرفتم و رفتم فرودگاه. یادم نیست بیلیت گرفته باشم. سوار هواپیما شده باشم، رسیده باشم خانه. فقط گرمای تن بابا رو یادم است که سفت بغلم کرده بود. چرا به من نگفتی بابا جون؟ کیفم را روی دوشم می‌اندازم و می‌آیم بیرون. دلم گرمای تن بابا را می‌خواهد. دلم تنگ شده برای اینکه از مطب برگردد. من و سمیرا را بنشاند رو به روی خودش و رو چای بنوشد و پشت سر هم بپرسد خب بابا جان زندگی میچرخه خوب میچرخه باید بروم فرودگاه